بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله واسكنه فسيح جناته والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى قبل أنه رب معبود حس يشارك عن ذوته جاءت هنا راته واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فهمتني فرمىده خدوند ولا يامركم ان تتخذوا ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا قلت ليينجا در هر دو تا ايه رب بمعنى چی اومده به معنای معبود به در هر دو تا والرب هو المعبود از جمله دلایلی که دلالعت میده که رب معبوده فرموده خداوند و دلیل و دلیل بر اینکه پروردگار معبوده قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا ربكم ای مردم بپرستید پروردگارتان را کچی؟ که شما را خلقت کرده است الذي خلقكم ان شما را آفرید است شما را خلقت کرده و من قبلكم و انهای که قبل از شما بودن لعلكم تتقون فاینکه پرهیزگار باشید تا اینکه از خدا بترسید تقوای الله داشته باشید کلمه تقبا، شأنش بالاتر از کلمه ترسه تقوا بقایه هست اصل کلمه تقوا از بقایه و پرده گرفته شده یک سپری که بین ما و خشم خدا باشه و عقوبت خداوند پس اگر ما نمیخواهیم از الله بترسیم و تقوایش داشته باشیم باید او را بپرسیم این دستور خداونده اون کسی که ما را آفریده است پس گرب که دیگری لازمه این که ما اون را رب شماریم لازمه رب بودنش نزد ماها در قلب ماها سجده کردنه به او هست لازمهش عمله همونطور که در محبت خودش ادعای محبت چی میگه قل کنتم تحبون الله فتبعونی. اگر ادعای محبت الله رو دارید از من پیروی بکنید بحث عمل میاد اینجا هم همینطور اگر سربردار رو به عنوان رب قبول دارید باید چیکار کار بکنید پروردگار و معبود خودتان قرار بدید لازمشه اینکه شخص بگه من خدا را پذیرفتم، به عنوان پروردگار آفریدگار این به درد نمیخوره این ادعای مشرکینم بوده قلی من ما فی السماوات و الارض لا الله اگر اونها بپرسی که خالق آسمون ها و زمین کی میگن الله الذی جعل لكم دیگه خداوند میاد نعمت هایش بعد اینکه من میگه من مستحق عبودیتم چرا چون من شما را آفریدم با که قبل از شما بودم. بودن و همچنین اون پروردگاری که زمین را برای شما بستری قرار داده که روش زندگی بکنید و بخوابید و امرار معاش بکنید و سما بینه و آسمان را یک ساختمانی قرار داده که سختی باشه بر شماها که دیگه ستاره ها و سیاره ها و نمیدونم اون اجرام آسمانی ده از اون آسمان عبور نکنن و به شما برخورد بکنن که خداوند در جای دیگه میگه و جعلنا السماا سقفاً محفوظا آسمان را سقفی که شما را حفظ بکنه، سطر بکنه قرار دادیم پس آسمان سقفی هست که ما را بنایی هست خداوند طوری اون رو ساخته سقفی که ما را سفی بر ما بران فراشته که ما را حفظ بکنه از اون مخلوقاتی که خارج از آسمان هستن و شاید بیان و وارده این همونطور که ما می‌بینیم شهابهای سنگی میان در قدر به شمال یا مثلا در جاهای مختلف روی بر کره بر بر بر بر بر بر زمین فرو فر فر می پس آسمان هم سخفی هست باز قدر این نعمت رو بدانیم و انزل من اسمه ایمان از جمله چیزهایی که خدا من اینجا اشاره میکنه از مخلوقاتش بحث آسمانه که ازش آب را میبارد با ابرهایی که میفرستد و انزل من السماء ایمان فا اخرج بهی من السمرات رزقه لكم و با اون آب خدا من انواع میده را به شما میدهد انواع میده و انواع گول و انواع کیا این انسان تعجب میکنه از دقت آفرینش خدا خاکی هست صحرا و بیابان میری هیچی نمیبینی غیر از خاک ولی خب وقتی سبحان الله بارندگی میشه باران که میباره میبینید این گل گل بنفش اون گل زرد اون گل سفید و دیگری قرمز و دیگری آبی انواع و رنگارنگ گل‌ها از چی دارن از کجا دارن تغذیه میشن از آب و از زمین ولی رنگ های متفاوت هم همینطور مگر چیه اون میوه دانه میگه میشه حسه ای اون هسته در زمین روش آب میپاشی بعد بلند میشه میاد یک درختی میشه و اون سیب میده خلقت خداست یک ذره بیشتر نیستم تا ما موقع قبلا به سازیم جنین که ماها بودیم از آب و نطفه از یک اسپل از یک آب گندیده اونجا ما درختان و علف ها و نمیدونم انواع میوه ها میبینیم که از چی خلقت میشن از یک هسته از یک دانه خیلی ریز که آب رو ریشهختی میشه اون نبات میاد بیرون و با اون با شکل زیبا همیشه خدع بشریته نمیتونه کسی انکار بکنه نمیتونه هیچ کس انکار بکنه که که طبیعت رو دوست نداره درخت و آبادی رو دوست نداره رودخونه و آب و خنک رو دوست نداره کسی نمیتونه اینو انکار بکنه و حاشا بکنه به خاطر همین خداوند به خاطر ما تشویق بشیم همیشه از بهش بحث میوهاش میکنه اون چیزی که ما ازش لذت میبریم بحث زن میکنه چون انسان طمع داره در در اون چیز شهوت داره زینت نه... به شهوات النساء والبنین و همچنین یعنی غیر از اون زن رودخانه ها چقدر انسان مثلا سفا پیدا میکنه قلبش وقتی که برندگی میاد لذت میبره اون صدای نمنم باران وقتی که به زمین برخورد میکنه بعد اون سیلاب ها از کنار خانه‌اش عبور میکنه خب اینا همه لذت بخشه همه آرام بخشه صداش به انسان آرامش خاصی میده خب خداوند داره این نعمت ها رو بیاد ما میاره اگر شما ای بنده خدا اگر این نعمت من رو بیاد نداری اینجا متذکر باش بدان این نعمتی که میبینی این چیزی که لذت میبری ازش اون آب اون درخت، اون طبیعتی که داری میبینی اون گل رنگارنگ، رنگ، اون همسری که تو آرزوش داریم و تمعش داریم و میخوایی ازش لذت ببری و اون بچه هم همینطور هر چیزی که تو دور بر خودت میبینی ازش احساس لذت میبری و میخوایی اون لذت همیشه با تو باشه بدانی که این لذت ها رو خدا آفرید است، خالقش الله است. فلا تجعلو فس برای خداوند قرار ندهی چی؟ اندادن نت شریک شریک در چی؟ در آفرینش یعنی نگید که خالق جز خدا نیست؟ نه. بحث بحث عبودیت یا ایها الناس اعبدوا ابتدای آیه بحث, آخرشم همی. همی بحث عبودیت آخرشم همین همین بحث است چون وقتی که توصیه به عبودیت میشه لازمش افراد خداوند در الوهیت در هست. ولی خب اگر افراد خداوند در ربوبیت بشه، در توشید علمی بشه لازمش این نیست که در توشید عملی هم، در عبودیت و علوهیت هم ما خداوند یکتا قرار بدیم. خیلی ها مثل مشرکین خداوند را یکتا قرار می دادن در ربوبیتش در صفاتش، در توشید علمی. میگفتن خدا خدا یکتاست ولی در اعمالشون، در دعاهاشون، شفعا، نمی مردگان خودشون، های خودشون و واسطه بین خودشونو خداوند ق بس وقتك توحيد عملي ومت قط بخود لازمك توحيد علمي مح... توحيد علمي هميات. بإنحرافاتي كناس البشرية في شو مده هماش تروحيد عملي هاس. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون درس ذاتك شو ميدونيت. يعني شو ميدونيت كمان يكتاه هستم در آفرنيشان. فسمرة در عبوديتة من در عبوديتة تونم عبوديت مرة يكتاه قرار بديت. ابن كثير رحمه الله ميقولي. الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. فضمن در این ایده می میخواد بگه کسی که اینها را آفرید این نعمت هایی که یاد شد از مخلوقات از ماها و پدرون و اجدادمون از درختان و از آسمون ها و زمین اون کسی که اینها را خلقت کرده فقط اون مستحق عبودیتشه. والا عبادت چیه؟ ما داریم میگیم خداوند مستحق و همه کس میگه خداوند مستحق عبودیتشه. ولی خب تعریف عبادت چیه؟ این عبادت چی میتونه باشه؟ آیا دعا کردن هم است؟ آیا تسبیح خدا هم مح... م... یا تسبیح از غیر از خدا هم عبادت است؟ از خدا و غیر خدا. آیا تسب خودش اصلا به عنوان یک عبادت محسوب میشه؟ آیا محبت هم یک عبادت محسوب میشه؟ آیا تمع امید در خداوند؟ آیا اینها هم عبادت محسوب میشه؟ اون چیزهایی که دل قلب... قلب انسان رخ میده؟ اینجا میاد مؤلف بعد از اینکه این آیه و این گفته ابن کسی رو میاره بعد میاد تفصیل میکنه در انواع عبادت که این عبادت چیه عبادت در نظر اصولی ها میگن اون چیزی که شرع بهش دستور داده و معقول نیست یعنی نمیشه اون رو با عقل به دست آورد یک فرمول عقلی نداره عبادت یعنی مثلا بفرض نماز شما میخواد روبرو بکنید سجده بکنید یک فرمول عقلی نیست که یک شاسی داد کشف بکنه میگه من کشف کرده. باید تشویق بشه باید پیامبر دیگه‌داری خداون بهمون یاد بده که ما چطور نماز بخونیم بخاطر هم همین رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمه صلوا کما را ایتمون و صلی نماز بخونیم اونطور که من نماز میخونم اگر کسی نماز خب مثل یهود مثل نصارا و مثل دیگر ادیان اون نمازش قابل قبول نیست اون نمازی خداون از ما میپذیره که به رسول الله صلی الله علیه و آله کرده و اونطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوند بس انواع عبادت انواع عبادت که خداون بهش ام کرده اسلام ایمان و احسان و از جمله چیزهایی که شامل این ستا چیز میشه دیگه میاد تفصیلش میکنه و منه دعاء و الخوف تک به تک اینها رو شرق داد اصل این کتاب این نمیدارم این مقدمه ای که داریم ما میخونیم این جزوی ای که ما داریم میخونیم در بحث ثلاثت و اصول روی ستا مبحث گفتیم از جهت اون ستا اصلی که اصل کتاب برش هست شناخت خداوند و شناخت, شناخت دین و شناخت پیامبرمون این سه تا اصل در یک جنبه که مؤلف سعی می‌کنه توضیحش بده و از جنبه دیگر خود اون چیزی که ما ملزم بهش هستیم در توحیدمون در یک تا و یک تا شناسیمون ما به خداشناسی سه تا چیز روز مترتب میشه یعنی شناخت ما نسبت به خداوند ایمان ما به خداوند معرفت خداوند اینجا نه تفسیر اون بحث خداوند اش حقوق خداوند لازمه ای که ما ایمان به خدا آوردیم چیه؟ سه تا اصله. بعد دیگه ما باقی زیر این سه تا اصل واقع میشن. اون سه تا اصل چیه؟ حدیث جبرئیل. وقتی که بعد این حدیث جبرئیل بعدا دوباره شرحش رو اومد. جبرئیل میاد پای پای پا رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشینه و سوال میگرسه: یا رسول الله اسلام چیه؟ اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین توضیهش میدن: تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و شهدت نماز زکات روزه و حج درسته این ارکان اسلام بعد گفت که مل ایمان قال ان تؤمن بالله وملائكته ورسله و... واليوم الاخر والقدر, و... والقدر خيره وشره ملائکته والقدر خيره واليوم الاخر والقدر خيره وشره ایمان به این 5 تا یا تا به ایمان به الله ایمان به ملائکه ایمان به پیامبرانش ایمان به کتاب های آسمانی ایمان به روز اخرت و ایمان به قضا و قدر خیر و این ایمانه. ما باید ایمان داشته باشیم. و وقتی ما گفتیم خب ما همیشه در بحث عقیدی میگیم اسلام در, اون در اینجا در این حدیث اعمال ظاهری هن. از نماز روزه و شهادت این گفتن و دیگر اعمال ظاهری. و ایمان برمیگرده به ایمان باطنی و قلبی ایمون. اون چیزی که برمیگرده به قلب. از اون چیزی که اعتقاد قلبی هست. اعتقاد قلبی و ایمان قلبی باور قلبی نسبت به خداوند، نسبت به ملائکهش، نسبت به پیانبرانش انشاءالله بعضا دوباره این ها فهد اومد و مرتبه احسان اینکه خداوند را بپرسیم اونطوری که ما خدا را جلو خودمون میبینیم اگر خدا را جلو خودمون نمیبینیم اینطور تصور بکنیم که خدا ما را میبیند این مرتبه احسان این نهایت عمل قلبه نهایت عمل قلب یعنی انسان اینقدر قلبش به خدا نزدیک بشه چنان نماز بخالی که خداش, خداش جلو وخداش من بینه از این بعدن ان شاء الله شعر خوامدات يقول المالف رحیمه الله وانواع العبادة التي امر الله بها مثل الاسلام والإيمان والاحسان ومنهم الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والانابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحد فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفضح الكافرون الآن إن جاء تفسيل ما عبادة رزاري تفصیل عبادت والا هرچی که ما اونجا از قلب مفتاد یعنی تعریف عبادت نزد اصولی ها گفتیم ولی کم نزد فقها ها و نزد اهل حدیث و نزد دیگر علمان نگفتیم بعضی ها چنین تعریف میکنن از عبادت عبادت تشریعی هست از طرف خداوند تشریعی از طرف خداوند خلاصش گفتن تشریعی هست از طرف خداوند بر بندگانش بعضی ها گفتن عبادت اون چیزی هست که خداوند دوست داره و از آن اعلان رضایت کرده که بندگان براش انجام بدن. بعضی اینجوری تعبیر کردن، هر یه رو تعبیر کرده. ولی خب به طور عامش عبادت اون چیزی هست که خداوند از ما خواسته انجام بدیم. این عبادت است. حالا معناشو درک بکنیم نه نکنیم. از اون چیزی که خداوند از ما خواسته خصوصاً در بحث اون چیزی که در بحث اسلام و ایمان گنجانده میشه. اولیش دعاست اولیش دعاست دعا کردن و صدا زدن که لازمه یک کلمه ای چیه؟ توحید انتو امین الله لازمه ایمان و لازمه شهادتی قلم الاسلام انتشهد ان لا اله الا الله این شهادت باید به حق باشه این شهادت به حق چیه؟ شهادت به حق وقتیه که ما در عبادت های بدنیمون عبادت های مالیمون و عبادات های قولیمون و عبادات عبادات های قلبیمون خدا رو درش دیکته قرار بدیم. عبادت قولی اسکار شهادتین خدا رو یکتا قرار بدیم. فقط ذکر خدا یاد و خدا رو بکنیم از ما به عبادت های مالی بحث الزکاة بحث نظره. اون مالی که ما می فقط برای خدا باشه. عبادات های عملی مثل زنب مثل نماز کنن فقط برای خدا باشه. فصللی رابی که ون نماز فقط برای خدا بکن و فقط برای خدا صبح بکنیم. بقاطر رسول رسوله صلی اللہ علیه وسلم می فرماید من ذبح غیر اللهی فقط اشرت کسی که بغیر خدا زفت بکنه شرک ورده شریک در عمل جواریخش انجام داده اون اعمالی که خاص خداونده جز عبادت ها هست از روزه و از نزر و از نماز و از دعا دعا کردن هم یک عمل بدنی هست عمل جواریخه که انسان با زبانش و با, با گفتارش با قولش از خداوند داره میطلبه یک هر یک چیزی را میطلبه می و در هم رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره دعا چی میفرمایند و هو العباده دعا خودش عبادته اینجا حدیثی را میاره مؤلف که این لفظ شاذ است ادعاء مخ العباده با این لفظ شازه و صحیحش اونطوری که ثقات روایت میکنن الدعا و هو العباده و همچنین عبادت های قلبی که اینجا مثال های زیادی زد اینجا مؤلف ما دوباره به دعا برخواینده و ومنه الدعاء والخوف خوف نمی خوف تو میدینه ترس از خداوند انسان اونطوری که از خدا میترسه نباید از مخلوقات خداوند بترسه یعنی ترسش یعنی مثلا بالفرض اگر مخلوقی بهش دستور داد که خلاف امر خدا را انجام بده اونجا باید یاد داشته باشه که خداوند رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده و گفته اونشی که برش وحش شده لا طاعت المخلوق في معصیت الخالق در معصیت خالق اطاعتت مخلوق دیگه نیست حتی اگر میخواد امیر باشه میخواد هر کسی باشه اون قوم از صحابه رفتن به جهاد بعد امیرشون آتشی رو به پا کرد بعد داخل من امیرم باید حرف منو باید دیگه دیگه ببقید ببقید بعد حرف من رو یه سری صحابه گفتن ما بعد حرفشو بشنوی عده دیگه گفتن نه بعد رسول الله را شد و فرمودند ان دخلوها ما خرجو منها اگر وارد اون آتش میشدن دیگه هیچو خارج نمی‌شدن چون عصیان خالق رو داشتن میکردن اگر اطاعت از امیر میکردن اطاعت از امیر در امر معصیت نیست. الله چی میخواد امیر باشه چی میخواد والده این باشه میخواد هرکتی باشه. طاعت مخلوق نباید بکنیم وقتی که ما ازش میترس الا اینکه اکراه بشیم درش. بحث خطر مرگ و زندگی باشه و الا ما اون ترسی که داشته باشیم باید ترسمون اون ترس بزرگ اون ترسی که باید بیشتر باشه باید از خداوند باشه. محبت همینطور همونطور که خداوند در قرآن میفرماید من الناس میتخذون من دین الله انددا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله شدت حبمون شدت ارتمون باید نسبت به خداوند شدیدتر باشه ورجا الرجا امیده امید به درگاه الهی امید به رحمتش امید به فضلش ما باید این عمل قلبی لازم نیست که ارسون به زبونش باید در قلبش داشته باشه این قضیه انسان نباید معیوس بشه از رحمت الهی حالا بگم من گناه کردم من شرک کردم خدا من رو نمی بخشه خیلی در قلب خودت باید این اعتقاد داشته باشه که خداوند توابه این باید باور داشته باشه خداوند غفاره و رجاء، و توکل توکل من فقط تعریفاتش میگم بد ها رو تک تک بر اینها محلف میاره توکل اعتماد بر خداوند با اتخاذ اسباب. فرقش با تواکل در اینه که توکل اتخاذ اسباب نیست یعنی شخص میگه حالا من اینجا نشستم خدا خواسته روزی میرسونه این توكله توکل, توکل اینکه من برم زحمت بکشم غذا رو بگیرم تو دهنم بکنم این توکل اتخاذ اسباب غذا خودش تو دهن من نمیاد این توكله که غذا رو بردارم تو دهنم بکنم اما توکل غذا رو جلوی خودم بذارم خدا خواسته من تو دهنم میندازه خیر اینطوری نیست این توكله همانطور که قومی از یمن بلند شدن در زمان عمران خطاب غذا با خودشون هم نکرده بودن و نه هم آبی بعد عمران خطاب وقتی این, این, این حرف رو شنید که اونها این کاری رو کردن فرمود ها اولئی متوکلون و لیسه با متوکلین اونها متوکلن نمتوکل. نمتوکل متوکل بر خدا نیستن اگر متوکل بودن هیچ وقت چنین کاری نمی کردن برای خودشون غذای آبی با خودشون بر می این توکل اتخاذ تو متاسفانه خیلی از به انحراف رفتن میگن که حالا خداوای رزق روزی رسانه برو در راه خدا برو دعوت بده خدا روزی میرسونه خیلی خدا اینجوری نگفته رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش برای خودش کار می‌کرده هم قبل از بعثت هم بعد از بعثت قبل از بعثت تجارت میکرده و بعد از بعثت برای خودش دام داشته و در حجه الوداع تا شطور از مال خودش زهد کرد رسول الله مال داشته خیلی از است من مال از کجا آورد؟ رسول الله صلی ببخشید تاجر بوده تجارت داشت با اموال خدیجه تجارت می‌کرد و مالی برای خودش داشت برای خودش سالاری داشت همونطور که در سوره نترمذی داریم روزی سالار از سالار پیامبر رسول الله صلی الله علیه و آله و میگوید مهمانی هم ام نشسته بود نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد سالار اومد گفت که یکی از بوزها برامون بوز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ازبح لنا مكانها اخرى برای ما براش دیگه بزن. این یکی, جديد یکی دیگه سر بزنن چون یکی جدید اومده یکی دیگه سر بزن رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه شرمنده نشه مهموناش به مهموناش میگه ان لنا غنم مئه. كل ما ولدت لنا ذبحنا مكانها اخرى تا بوزاری منظورش خودشه تا بوزاره اگر یکی جدید به دنیا آمد یکی دیگر بجاش ذبح میکنیم برای خودمون یکی دیگه سر میزنیم این دلیل برمی میده برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و خوشم کاسبی داشته اینطور نیست که اه... کاسبی نداشته باشن صحابه بنشینن بعضی از اذهان به اهل صفه که توی مسجد می و کار نمیکنند خیر دنبال کارم بودن از ابوهوریره گرفت که شما برید سیرت رو بخونید برید مگه اهل صفه تا آخر حیاتشون توی صفه نشستان میگه توی مسجد نشستان خیر همشون اهل جهاد بودن در جنگ تبوک شرکت کردهن مثل ابوهوریره این طور نبود که در مسجد بشینم آقا رسول خدا میرسه دیگه من جهاد نمیکنم دیگه من همرا رسول نمیجنگم یا مثلا من دوباره رسولی نمیرم خیلی چیزین نبوده سیغه صحابه رسول علیه و السلام بلکه اهل و اهل جد و کوشش و تلاش بودن بس این توکل و بعد از توکل میگه ورغبه رغبت تمایل به خداونده رغبت داشتن به خداوند یعنی که انسان خودش میل و تمایل داشته باشه به خداوند میل قلبی داشته باشه شوق علاقه داشته باشه نه که انسان نسبت به خداون بی علاقه بی تمایل اصلا هیچ رغبتی نداشته باشه حالا مردم نماز بیخونم بذار نماز بیخونم من که نمیخوام هیچ رغبتی نداشته باشه برای نماز برای روزی گرفتن این خود, یعنی خود رغبت این تمایل خودش یک انگیزه قلبی هست که سبب میشه انسان چون این انگیزه را داره وادارش میکنه بیاد عمل بکنه و رغبت و رهبه, رهبه همون حراسه همون ترس از خداونده حالا هست که شاید تکرار شد اونجا ترسه اومد خوف اومد اینجا رخبت اومد که یه نوع حراسه و یه نوع برحذر بودن از خداونده از خشمش از غضبش. ول خشور خشوره که خودتون میدونید خشوره داشتن نماز این که انسان حواسش پرت نشه و توجه و تماعون داشته به نزده آیات قرآن ول خشیه بازم خشیه خوف رهبه و خشیه این سه تا تقریباً مترادف هستند که بر اساس سیاق بر اساس اون جمله‌ای که در قرار می گیرن معانیش متفاوته این دیگه برمیگرده به کتاب‌های لغت اینجوری بحث تشریح لغوی نیست فقط اون چیزی که در معنای خشیه هست اینه که انسان مراقبت خداوند همیشه داشته باشه یعنی اینکه انسان نه اینکه حالا مثلا به این گناه من انجام نمیدم خدا خش برمنون میارزه درسته انسان باید ترس داشته باشه ولی که ماورای اون ترس دیگه خشیه هست که انسان طوری باشه نسبت به خدا و نه که تنها در... در... به نسبت حرام حتی به نسبت مستحبات به نسبت واجبات اونقدر ترس از خدا داشته باشه که بگه شاید اگر من این نماز از من فوت شد یا این نماز را درش خشور نداشتم شاید خدا من رو محاسبه بکنه خشی یک مرتبه بالاتر یک پلهی بالاتر هست از ترس خشی بعضی میگن که همراهش محبتم میاد یعنی اون ترسی که انسان در قلبش هست همراهش محبتم هست یعنی چون شوق محبوبش داره شوق الله در قلبش هست نه ترس داره که الله ازش برنجه نمیخواد یک کاری انجام بده که سبب رنجش خدا بشه نه که تنها ترس از عذابش خوف و ترس داشته باشه از عذابش از جهنمش از خشمش نه بلکه بالاتر از اون در قلب خودش احساس این رو داشته باشه که شاید خدا رنجیده بشه در مقابل اون فعلی که اگر انجام نده اینا همه عمال قلبیه خوف، رجات، توکل، رقبت، رهبت خشوع، خشیه و انابه انابه همون انابه و توبه و بازگشت بسیار خدابنده که انسان بر بگرده و همراه اون اعتراف زبانیش که سفار میکنه توبه میکنه اعتراف قلبی هم داشته باشه و قلبنم،, قلبنم از خداوند شرمنده بشه و عزم قلبی و جزم قلبی بکنه که دوباره با اون گناه بر نگرده اما اگه انسان بگه از فقط الله و دوباره باز دیگه تکرار بکنه عزم و جزم قلبی نداشته باشه اون دیگه توبه براش حساب نمیشه انابت رجوع به خداوند با قلب یعنی قلبا عزم و تأکید داشته باشه که دیگه اون گناه رو انجام نده. والاستعانه والاستعاده والاستغاثه هر کمک گرفتن پناه بردن استعانه در اصل کمک خواستن استعانه مثلا تو بفنان از فنان کمک گرفتم. انسان کمکش رو از خدا بگیره استعانه مثلا بالفرس بلند میخواد بشه بسم الله کاری رو بفت انجام بده بسم الله لباس میخواد بگوشه بسم الله حتی در خلا رفتن در دستوی رفتن هم بسم الله اومده این انسان همیشه یاد خدا داشته باشه با اسم خدا ما گفتیم با اولش که کتابی شروع کردیم با بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم این با بایی چیه؟ بای, بای استعانت کمک انسان در هر کاری از خداوند استعانت بشویه حالا چه میخواد با بسم الله چه میخواد با یا؟, یا الله یا الله یا رحمان اینا هم استعانه هست اما اگر ما بیایم این استعانه که با یا هست یا با, با یک استعانه در شش روشی که در استعانه هست اگر از غیر خداوند بخواهیم در اون کاری که از دست مخلوق برنمیاد از اون کاری که از دست مخلوق بر نمیاد اگر ما استعانت بجوییم اونجا ما دوچار شرک شدیم استعانت و همچنین استعادت استعاده پناه بردنه پناه جستنه عوض بله وقت بحث استعاده سبحان الله بالاتر از استعاده بالاتر از عوض لود داریم بعضی از صوفی ها از شدت نوبتی شدت شرکشون من میخوام مثال بهتون بزنم شدت شرکشون و شدت گمراهیشون میان یعنی اون چیزی که خاص خداوند گفتیم استعاده خاص خداوند یعنی انسان پناه ببره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه میبریم به خدا از شیطان اون صاحب برده که میاد در بس به رسول الله صلی الله علیه و سلام میکنه چی میگه در واسطه رسول الله میگوید من لی در برابر رسول الله میگه ملی لی و به سیواک ای رسول الله من جستو کی دارم که بهش پناه ببرم جستو کی دارم نهایت پناهان یعنی لود نهایت عوذه یعنی نهایت پناه برده خب این شرک نیست کسی بعد از که رسول الله صلی الله علیه و فوت شده در زیر خاک خواب خوابیده بیاد اینجا از رسول الله صلی الله علیه و آله بشنو کمک بخواهد سهانت بجویید و بهش پناه ببره از شر شیطان مثلا شخصی میگه من به رسول خدا پناه میبرم یا رسول خدا بدادم برس یا رسول خدا به من نجات بدر در فرانی پناه ببره به رسول الله صلی اللہ علیه وسلم این چیه؟ شرک قلبن و گفتارن ما شرک شدیم حالا بعدن گفتیم برحل یکی از اینها تک تک اینها دلیل از قرآن خواهد اومد و الاسبغاث غوث طلب نجات کردن طلب نکومت خواستن. غوث طلب نجات کردنه مثل کسی که در, در روی کشتی هست میخواد غرق بشه نجات میخواد نجات, نجات بده این خدا مرا رو نجات بده این استقاطه هست و الزبحو که همون ذبح کردن گوسفند و شتر و دیگر حیوانات هست و النظر رو کردن اینها کلا عبادت ها هست که در شرع اومده و براش دلیل هست و غیر دالکه من انواع العباده التی امر الله بیها كلها لله تعالی همه اینها باید برای الله باشه و نباید شریکی برای خداوند در این عبادت ها قرار بدیم من عمل عملا اشراک مایی فيه غیری ترکته و شرک کسی عملی انجام بده با من در اون عمل اون که این اعمالی که اومده که خاص خداونده شریک قرار داد خداوند او رو و شرکش رو هر دو تا ها میکنه اون شخص رو خداوند اعلان برائت ازش میکنه دلیل حالا تک تک اینها از میاد برش ما در باری دعا قبلا گفتی فقط این گفته معلف رو میگیم تا اینکه جلسه بعد بریم به مباقیه ادلها و الدلیل بر دعا و قوله تعالی و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا همونطور که مسجد خاص خداونده که فقط در اونجا نماز برای خدا خانده بشه پس همینطورم انسان نباید در دعا برای خداوند شریک قائل بشه. همونطور که در مسطح خاص خدا سجده میکنه دعاش رو فقط خواستتن از خدا باید بخواهر. فمن صرف منها شیئن لغیر الله فهو مشرک کافر. اگر این ها را صرف بکنه یعنی شریک برای خدا در اون بذاره اون شخص مشرک و کافر. و دلیلش هم فرمودی خداوند: بند. ومن یدعو مع الله اله ایلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. کسی که غیر از خدا را سریعات بزنه صدا بزنه دعا بکنه ازش بخواد واسط قرارش بده بر ورزگار دیگری دیجار معبود دیگری کسی دیگری که دلیلی برش نداره بدونه که حسابش دست خداونده و اون شخصم کافره ان لا فل حل و وفل الحديدث الدعا و مخ البعبت تاثیهش کردیم گفتیم دعا خود عبادت است. یعنی اصل خود دعا عبادته و دلیل و قول دلیل بر که هم به صحت این حدیث دلیل و تایید این حدیث فرموده خداوند در قرآن قوله تعالی و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم ذاخرين وقال ربكم ادعوني استجب لكم فاردگار ما گفته به ما میگوید دعا بکنید تا اجابت بکنم اونهایی که استکبار میکنن از عبادتم این عبادت چی بود در قسمت اول دعا اونهایی که از این دعا استقبار می و این عبادت استقبار می جاشون جهنم خداونده بنده. و آخر دعوان الحمد لله رب العالمين و الله علی محمد و علی محمد.